داستانهای شاهنامه به نصر ساده تنظیم برای اجرا فریده حامد تهیه شده در گروه کتاب گویا و کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده فریده هامه عرض سلام و عدب احترام خدمت دوستان عزیز یاران همراه با برنامه دیگر از سری برنامه های داستان های شیرین شاهنامه فردوسی در خدمتتون هستیم و با هم پنجمین قسمت از داستان سیاوش رو پی می‌گیریم. همراه ما باشید در برنامه قبل به اونجا رسیدیم که سیاوش شهر جدیدی رو به نام سیاوش گرد ساخت و یک بار دیگه گرسیوز به دیدار سیاوش آمد و از دیدن تواناییها و شهری که سیاوش ساخته آتش خشم و حسد در وجودش زبانه کشید و شروع کرد به بدگویی کردن از سیاوش نزد افراسیاب و برعکس از افراسیاب نزد سیاوش به سیاوش گفت که افراسیاب قصد جون تو رو کرده و, و به نفته که تو یاران تو برداری و به سمت سرزمین پدریت یعنی ایران بری که در اونجا پدرت سخت دلتنگ و نگران توه این مملکت جای تو نیست از اون طرف هم و افراسیاب گفتش که این سیاوش دیگه اون سیاوش قدیم نیست بسیار مقررو و جاه طلب شده ضمنا با پدرش و ایرانی ها هم در ارتباطه و چیزی نموده که همین روزا با سپاهی بزرگ به سمت تو بیاد و قصد کشتن و براندازی حکومت تو رو در سر می پر حالا بسیار رفتارهای ناشایست سخنچینی ها و تفرق اندازی هایی کرد که کم کم در سیاوش هم اثر کرد امشب ادامه این داستان رو با هم پی می گیریم. سیاوش که حرف های گرسی وز رو شنید خیلی ناراحت شد پذیرفت که نامه ای به افراسیاب بنویسه و, و یه عذر و ای بیاره که خودش رو از رفتن به پایتخت توران معاف کنه در نامه بعد از تشریفات مرسوم برای افراسیاب می نویسه که به شدت بیمارم و نمیتونم که به سرعت حرکت کنم و به دیدار شما بیام بوزش منو بپذیرید و در اولین فرصت که حالم مساعد و بهتر شد به دربار خواهم اومد. گرسی وزم نامر رو میگیره و دوباره به سمت پایتخت توران حرکت میکنه. وقتی به نزد افراسیاب میرسه به افراسیاب میگه که سیاوش دیگه نمیخواد به اینجا برگرده. درنگ نکن که اگه وقت بگذره اون با سپایی بزرگ به تو حمله خواهد کرد. و تو رو سرنگون میکنه افراسیاب صورتش از خشم سیاه میشه خون تو چشماش میده و دقایقی سکوت میکنه و توی گاخش شروع میکنه و قدم زدن و بالا پایین رفتن و بعد به گرسی از فرمان میده که برای جنگ آماده بشین سپاه و جنگ رو آماده کن تا هرچه زودتر بریم و تکلیف این پسرک جوان گستاخ رو مشخص کنیم دیگه درنگ جایز نیست از اون طرف بعد از رفتن گرسیوز از سیاوش گرد سیاوش در حالی که صورتش از قصه زرد شده بود به شبستان رفت آروم قرار نداشت و ناراحتی اون یک لحظه آسوده نمیگذاشت. همون شب خواب وحشتناکی دید فریاد کشید و لرزون از خواب پرید همسرش فرانگیز با صدای اون بیدار شد و با نگرانی پرسید چی شده؟ چه خوابی دیدی که اینقدر هراسون شدی؟ سیاوش میگه خوابی شگفت آور و ترسناک دیدم افراسیاب با سپاهش در کنار رودی خروشان آماده پیکار با من بودن شاه توران با خشم به من نگاه میکرد و در این سوی رود شهر سیاوش گرد در آتش میسوخت فرنگیسونه دلداری میده و پس از اینکه سیاوش اندکی آروم میشه دوباره به خواب میره هنوز پاسی از شب نگذشته بود که نگهبانان نگاه از خواب بیدار میکنند و بهش اطلاع میدن که افراسیاب با سپاهی بزرگ به سمت سیاوشگرد داره میاد سیاوش از شنیدن این خبر خواب خودش رو تعبیر شده میدید و با خودش گفت مگه من برای شاه نامه ننوشتم و تو اون نامه توضیح ندادم که نسبت به اون وفادارم و به زودی به نزدش خواهم رفت پس دلیل این دشمنی چیه چه انگیزه و حاملی شاه رو وادار کرده که به سمت سیاوش کرد لشکر کشی کنه وقتی که فرنگیس فهمید چه موضوعی باعث پریشونی سیاوش شده بهش گفت پیش از اون که به تو گزندی برسه بیدرنگ سوار به رسبت رو و از توران برو برای منم نگران نباش سیاوش گفت لشکرکشی و دشمنی افراسیاب رو من همین چند لحظه پیش تو خواب دیدم میدونم که زندگی من به سر رسیده و بالاخره به دست افراسیاب کشته میشم ای فرنگیس مهربون همسر نازنینم بس از این که فرزندمون چشم به جهان گشود اگر پسر بود نامش رو کیخست بگذار من میدونم که دشمنام دیر یا زود سرم راستن جدا میکنن و من تنها و بیاور در خاک غربت جان به جان آفرین تسلیم خواهم کرد نه تابوت یابم نه گور و کفن نه بر به بگرید کسی زنج پس از اون از خوابگاه بیرون اومد لباس رزم پوشید و فرمان داد تا لشکریان برای دفاع آماده بشنند خوشید که تلو کرد سیاوش با سپاهیاش به سمت لشکر افراسیاب در حرکت بود هنوز نیم فرسنگ نرفته بود که سپاه تورانیان رو دید که در حال پیشروی بودند یاران سیاوش با اینکه میدونستن نمیتونن در برابر سپاه بزرگ افراسیاب، مقاومت کنند و کشته میشن به قلب لشکر دشمن یورش بردند و جنگ آغاز شد نبرد نابرابری بود که خیلی زود به پایان رسید و یاران اندک سیاوش همه به دست تورانیان کشته شدند افراسیا بعد از اینکه پیروز شد فرمان داد سیاوش رو زنده دستگیر کنند طول نکشید که سیاوش به دست سواران توران گرفتار شد وقتی که خبر دستگیری رو به افراسیاب دادن بلا فاصله فرمان قتل اون رو به دجخیمانش داد و گفت اونو به کوهستان ببرید و در جایی که هیچ اثری از سبزو و گیاه نیست سرش رو از بدن جدا کنید مبادا که خون اون بر زمین بریزه سپاهیای توران با همه سنگ دلی که داشتن به کشته شدن سیاوش بیگناه و پاکتل راضی نبودند و با اعتراض به افراسیاب گفتند شاه ها از کشتن این جوان بگذر درختی نکار که حاصلش جز زهر چیز دیگه ای نباشه هم افراسیاب نصیحت میکردند و از اون میخواستند که از خون سیاوش بگذره و اونو به قتل نرسونه پیلسم برادر کوچکتر پیران که از دل ایران سپاه توران بود به افراسیا پشتار داد و گفت از این بیداد بگذر و سر این جوون بی گناه رو از تنش جدا نکن که پشیمون میشی اگر گمان میکنی که سیاوش گناهکاره، اونو به زندان بنداز از ایرانیا بترس به ترس که اونا تو رو نخواهند بخشید کاووس و رستم به کینخواهی سیاوش توران رو به آتش میکشن و دودمانت رو به باد میدن گرسی که کینه و دشمنی سیاوش کورش کرده بود هر کاری که میتونست کرد تا شاه توران از کشتن سیاوش منصرف نشه گرسی به بفراسیاب گفت به پنده اندرز این خام کاری نداشته باش سیاوش اکنون مثل یک مار زخم خورده است باید سرش رو بکوبی الان موقعی دلسوزوندن و پشیمونی نیست اگه اون زنده بمونه همه را نابود خواهد کرد و من و تو رو هم از بین خواهد برد به توران ستم نکن و هر چه زودتر اونو بکش دوتن از دوستان نزدیک گرسیوز که مثل خودش بد نژاد و ذات بودند به اسم دمور و گروی زره به پشتیبانی از گرسیوز جلو اومدند و به افراسیاب گفتند سیاوش دشمن توست اونو بکش وگر نه پشیمون میشی افراسیاب پاسخ داد با اینکه پیش از این اختر شناسا منو از سیاوش زنده بودن باید بگم که من تا کنون از اون بدی ندیدم اگه خونه اونو بریزم گرفتار آتش خشم رستم و کاووس خواهم شد و اگر از کشتنش در بگذرم بیگمان اون یک روزی به من آسیب خواهد رسوند نمیدونم چی کار باید بکنم شاه دو دل بود میخواست فرمان نهایی رو سادر کنه اون از خطر سیاوش بیشتر از خشم کاووس رستم میترسید میرفت تا فرمان قتل جوان بیگناهی رو سادر کنه فرانگیز که از فرمان پدرش با خبر شد گریه کنان به نزد شاه اومد و در حالی که صورتش رو با ناخون میخراشید و به شدت گریه میکرد به پای افراسیاب افتاد و گفت پادشاه سنگ دل نباش و از خون همسر بی گناه من بگذر. این بیدادگری رو خدا بر تو نخواهد بخشید. سیاوش برای خوشنودی تو از پدرش و از میهنش گذشت و به توران پناه آورد نشنیدی که زهاک هم کار چه سرنوشتی داشت؟ بیداد و ستم عاقبت خوبی نداره سرانجام خوبی نداره بدون که رستم به کینخواهی سیاوش خاک توران رو با آتش میکشه کاری نکن که نفرین ابدی نسارت بشه نسایه پیلسم التماس فرنگیس و بقیه نیکخواهان لشگر افراسیاب در دل سنگ افراسیاب اثر نکرد و با خشم به فرانگیز پرخاش کرد و گفت برگرد و به سرای خودت برو من بهتر از تو میدونم که چه کاری باید بکنم فرانگیس همچنان موند و گریهزاری کرد و دست بر نداشت از اصرار کردن تا اینکه افراسیاب فرمان داد اونو به زندان بندازند پس از اینکه فرنگیس رو بردن افراسیاب فریاد کشید سیاوشو به جایی ببرید تا خروش و ناله اونه که اونو کسی نشنوه و کارشو تموم کنید دشخیمان سنگ دل افراسیاب فرمان اونو رو اطاعت کردن. به فرمان این شاه ستمگر سیاوش بی گناه رو با خاری در حالی که دستهاشو بسته بودند کشیدند و به محلی که افراسیاب فرمان داده بود بردند گروه زره خنجر آب دیده ای از گرسی وزبت نهاد گرفت و بیدرنگ رنگ اون جوان دلاور رو به خاک انداخت و پیش از اینکه سر اون جوان پارسا را از تن جدا کنه تشتی زرین برای اون آوردند و اون تشت رو زیر سر سیاوش گذاشت و به این ترتیب سیاوش بیگناه، معصوم و پاک نژاد به دست گروی زره بدزات و به توتعه گرسی وز به قطر رسید علا رقم دستوری که افراسیاب داده بود خون سیاوش بر زمین ریخت طولی نکشید که از اون خون پاک گیاهی روید. گیاهی که مردم سوگوار اون رو سیاوشان نامیدند گیا را دهم من کنوند نشان که خانی همی خون سیاوشان در پی این بیداد زمین و زمان شورید و برخاست، برخواست چهره روز از این ماتم تیره و تار شد طوفانی سیاه و سوگوار وزیدن گرفت و خروشی از زمین برخواست انگار که به ناگاه شب اول ناک و نفرین شده بر همه جا سایه افکنده باشه از اون سو فرنگیس در قم همسر بیگناهش به نشانه ی سوگواری گیسوانش رو برید. رسمی دیر پا که در سوگواری زنان گیسوان خودشون را می بریدند. شب و روز گریه می کرد و مدام فریاد می کشید که نفرین بر توی افراسیاب. آه و نفرین فرانگیس به گوش افراسیاب رسید و چون می ترسید گریه و زاری دخترش مردم رو بر علیه اون به شورونه فرمان داد تا فرنگیس رو از زندون بیارن و با خاری به کوی و بازار ببرند و اونجا اون رو شلاق بزنند همه مردم شهر گریه میکردند بزرگان و پهلوانان کشور توران در قمه مرگ سیاوش در دلشون افراسیاب رو نفرین می‌کردند. اونا می که پس از این جنایت توران هرگز روی آرامش نخواهد دید. خبر این فاجعه به گوش پیران رسید پیران که اون موقع در پایتخت بود دو روز و دو شب به تاخت سواری کرد و به سیاوش گرد رسید اوزار آشفته و مردم را سوگ واردید به طرف کاخ سیاوش گکلون در تصرف افراسیاب بود رفت ولی هنوز به اونجا نرفته با صحنهی عجیب و دردناک روبرو شد دشخیمان افراسیاب فرنگیز رو در بازار میگردوندند و به تازیانه میزدند پیران از دیدن این وحشیگری به شدت متاثر شد به فکر نجات فرنگیس افتاد و با عجل خودش رو به افراثیاب رسوند که هنوز مثل گرگ زوزه میکشید افراسیاب به اون گفت فرنگیس رو باید آنچنان بکوبند تا فرزندش که در شکم داره هم نابود بشه و اگر فرزند سیاوش به دنیا بیاد ما روی آسودگی رو نخواهیم دید پیران که از جایگاه و و قرب زیادی هم نزده افراسیاب برخوردار بود به اون گفت فرنگیس رو به من بسپار اگر فرزند اون پسر بود کودک رو به درباره تو خواهم آورد افراسیاب خواهش پیران رو پذیرفت و پیران بلا فاصله فرنگیس رو از دست دشخیمان نجات داد و اون رو به همراه خودش به منطقهی به نام خوتن برد و اون رو به دست همسرش گلشهر سپرد تا از فرانگیز در دوران بارداری مراقبت کنه خب دوستان عزیز این قسمت هم به پایان رسید. تقریبا داریم به پایان داستان سیاوش می‌رسیم. امیدوارم که این داستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه و مثل همیشه ما رو با نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون در بهبود این سری داستان‌ها و برنامه‌ها یاری کنید. پس تا برنامه‌ای دیگر و داستانی دیگر از شاهنامه حکیم و برقاسم فردوسی همه شما رو به خداوندگار بزرگ می سباره. روز روز روزدارتون به کام و به میل